داستان مسافر تورینوی تو شهر تورینو مرد مرفحی زندگی میکرد که سه تا پسر داشت پسر بزرگه اسمش جوزپه بود جوون ترفرزی بود که همیشه فکر یه سفر توی ذهنش بود اون میخواست شهر قسطنطنیه رو ببینه پدرش که میخواست اون ازدواج کنه تا وارسش بشه و نسلش ادامه پیدا کنه دوست نداشت که پسرش به این سفر بره اما جوزپه جز به این سفر به هیچ چیز دیگه ای فکر نمی کرد خلاصه پسر دوم خانواده زنگ گرفت پدرش به اون به چشم کسی نگاه می کرد که کاروبار اونو دنبال میکنه و اسمش رو زنده نگه می داره این بود که تصمیم گرفت که اجازه بده جوزپه سفر خودش رو شروع کنه و بلاخره یه روز جوزپه با یه صندوق پر از اسباب و وسایل و پول به راه افتاد به طرف شهر قسطنطنیه. های دریا طوفان شد. کشتی بالا و پایین میپرید. اختیار کار از دست ملوانا خارج شده بود. کشتی از مسیرش منحرف شده بود و خورده بود به یه سخه. و متاسفانه همه ی سرنشیناش افتاده بودن تو آب و غرق شده بودن. کشتیداش میرفت میرفت ته آب که جوزپه بیرون پرید و سوار صندوقش که به هیچ قیمتی ازش دست نکشیده بود شد و خلاصه تمام شب توی طوفان بالا و پایین پریده بود. بالاخره صبح شد. دریا آروم گرفت. با جوزپه و صندوقش رو به ساحل یه جزیره رسوند. جزیره با اینکه پر بود از درخت، اما انگار هیچ کسی اونجا زندگی نمی کرد. جزپه با تعجب دور رو نگاه می کرد. همون موقع یهو هو یه گله آدم وحشی پیدا شد. لباس اون آدما از پوست حیوان بود. جوزفه با ترس به طرفشون رفت و ازشون کمک خواست. یه جای برای استراحت. بعد ازشون پرسید آیا میتونن توی هم کردن این صندوقچه بهش کمک کنن ؟ اما جزه نمیتونست حرفها به اونها بفهمونه یه سکه طلا در وردده بهشون نشون داد ولی اونا انگار که نمیدونستن باید چیکارش بکنن؟ فقط نگاه میکردن ساعتشو بهشون نشون داد اما این وسایل برای اونا هیچ ارزشی نداشت هیچ معنی و مفهومی براشون نداشت. جوزپه یه چاقو بهشون نشون داد و با اون چاقو شاخه یکی از درخت رو برید. اون آدما فقط مشغول تماشا کردن بودن. خیلی دستشون رو دراز کردن تا چاقو رو بگیرن. اما جوزپه بهشون نشون داد که نمیخواد اون چاقو رو به هیچ کدومشون بده. بلکه میخواد چاغو رو به کسی بده که از همه بهتر و قفیل باشه. خلاصه اون آدما بالاخره بلاخره جوزپه و صندوقش رو با هم پیش پادشاهشون توی قار بردن. بعد از اینکه پادشاه جوزپه رو دید خیلی زود با هم دیگه دوست شدن و جوزپه توی قار پادشاهی موندگار شد. زبونشون رو یاد گرفت. و به اون آدمای وحشی خیلی چیزا رو که نمیدونستن یاد داد. مثلا وقتی فهمید که تو جزیرهشون سنگ آهک و خاک رس خیلی زیاده بهشون یاد داد که آجر بپزند و خونه درست کنن. پادشاه جزه رو جانشین خودش کرد و حتی دخترش هم به اون داد این ازدواج اصلا مورد قبول جزبهه نبود. چون از یه طرف قبلا عاشق یکی از اون دخترای جزیره شده بود و از طرف دیگه دختر پادشاه زشترین دختری بود که این مرد توی این مسافرت دیده بود اما میون اون همه مردمی که اصلا زبونشون رو خوب نمیدونست و تو جزیره ای که فرار ازش غیرممکن بود جذب تنها بود و وای به حالش اگه دوستی پادشاه رو از دست میداد به خاطر همین ناچار بود که تن به این عروسی بده. خلاصه جوزپه و دختر مورد علاقه‌اش با چشم گریون اما همیشه خاطرخواه هم و وفادار هم از همدیگه جدا شدن و جوزپه با دختر پادشاه عروسی کرد. و برای اینکه پادشاه هیچ وقت شک نکنه، دختر مورد علاقه جوزپه هم با یه ماهیگیر پیر عروسی کرد. جوزه موقعیت خیلی خوبی داشته اون جزیره. پادشاه نبود اما چیزی از پادشاه هم کم و نداشت. فقط یه چیزی کم داشت. اونم دل خوش. خودشو مثل یه برده اونجا زندونی می دید. احساس پشیمونی می کرد از اینکه به حرفای پدرش گوش نداده. بعد یه مدت دختر پادشاه مریض شد و مرد. قصر حکومتی به اعضای بزرگی نشست. پادشاه نمیدونست چطوری باید غم از دست دادن دخترش رو فراموش کنه. فقط گریه و زاری می کرد. برای دلداری پادشاه بهش گفت علا حضرت گوش کنید باید یه طوری خودتون رو آروم کنید. شما دیگه دخترتون رو از دست دادین. اما عوضش من همیشه کنارتونم. پادشاه گفت اگه من گریه میکنم فقط به خاطر از دست دادن دخترم نیست بلکه برای تو گریه میکنم جوزپه و تعجب گفت؟ برای من؟ منظورتون چیه و حضرت، پادشاه گفت؟ تو قانون این سرزمینونه می شناسی؟ اگه کسی بمیره باید همسرشم هم باهاش دفن بشه. قوانین و آداب و رسون بهش این دستور رو میده. باید اطاعت کنه. اعتراضا و گریه های جزبه به هیچ جایی نرسید. مراسم تدفین شروع شده بود. تشریه کننده ها تابوت عروس و که لباس ملکه رو به تنداش می بردن. از ترس نصف ام شده بود. دنبالشون را افتاده بود. مردم با گریه و زاری دسته را انداخته بودن. قبر یه غار بزرگی بود زیر زمین با یه سنگ بزرگی روش مردم سنگ و برداشتن و مرده ها رو با تمام داراییاشون میذاشتن داخل اون قبر جوزف خواست که به همراه اون صندوقش هم که پر از چیزای قیمتی بود با هاش دفت میکنن برای چند روزم براش آزوگه و غذا بذارند و یه چراغم بهش بدن بعد از تموم شدن مراسم دهنه قار رو با اون سنگ بزرگ دوباره بستند و جوزپه رو با همه اون مرده ها تنها گذاشتن جوزپه به کمک چراقی که داشت غار رو خوب شناسایی کرد پر از مرده بود بعضی از مرده ها تازه بودند و بعضی هم اسکلت شده بودند همراه اون مرده ها گنجینه های تلاو و نقره و سنگ های قیمتیشون هم دفن شده بود جزهه با خودش فکر میکرد این همه ثروت برای اون که به خاطر این رسم وحشیانه محکوم بود که روزهاشو توی اون غار بگذرونه چقدر بیارزشه اون وقت خسته و ناامید روی صندوقش نشست بعضی وقت هم ساعتشو از توی جیبش در می آورد و نگاه میکرد و خودشو آماده مردن میکرد. یه شب جوزپه صدایی مثل صدای پاشنید. اطرافش اطرافشو نگاه کرد. دید که یه حیوانی مثل یه گاو بزرگ توی قار داره حرکت میکنه. حیوان به یه جسد نزدیک شد. موهاشو با دندون گرفت و روی هوا چرخوند و اون روی پشتش انداخت. و بعد هم توی تاریکی قار غیب شد. شب بعد همون ساعت دوباره اون حیبون برگشت و یه جسد دیگه با خودش برد. جوزپه این دفعه رفت دنبالش. قار به یه راه رو ختم می شد. از صدای شرشور آب فهمید که انتهای این قار یه دریاست. این کشف اونو خیلی خوشحال کرده بود. دیگه مطمئن بود که زنده از این گودال میتونه بیرون بره. اما نمیخواست با اون همه ثروتی که با خودش داشت دست خالی از قار بیرون بره. برای همین از اونجایی که دیگه روز شده بود و نمیخواست جزیر نشین ها اون رو کشفش کنن تصمیم گرفت و با خودش فکر کرد که فردا برای فرار روز بهتریه. فردا صبح چیزایی رو که میخواست با خودش ببره رو آماده کرد. یهو نوحهٔ مراسم تشییع جنازه به گوشش خورد و دید که در قار باز شد و جسد یه مرد و بعدش هم یه زن زنده با یه چراغ و یه سبد غذا دوباره وارد قار شدن جزپه پشت یه سنگ قایم شد تا در بسته بشه و بعد خودشو به اون زن بدبخت نشون بده زنه که صندوق جوزپه رو ته قار دید رفت نزدیکش و گریون گفت جوزپه بیچاره من حالا دیگه اون مرد مرده و همون سرنوشتشون در انتظار منم هست. همون موقع جوزپه دختر محبوب قدیم خودش رو که با یه ماهیگیر رو کرده بود و حالا اونم دیگه مرده بود شناخت. اومد بیرون و دختره رو بغل کرد و گفت من که نمردم هیچ وقتم نمی میرم. بلکه من و تو با هم از این قار فرار میکنی دختر بیچاره وقتی به ترس و وحشت اولیش که نکنه روح جوزه هاش غلبه کرد و گفت هیچ وقت کسی زنده از اینجا بیرون نرفته چطور هنوز امیدواری؟ جوزه براش توضیح داد که چه کشفی کرده و بعد هم با همدیگه غذاهای تازهی رو که اون زن آورده بود خوردن و منتظر اومدن اون حیوان شدن وقتی که گاب اومد و یه جسد دیگه با خودش برد جوزپه یواش جواش رفت دنبالش تا اینکه ته غار نور ماهو تو دریا دید جوزپه خودش رو به آب زد و شناکنان جزیره رو دور زد و توی تاریکی خودش رو تو دهانه غار بالا کشید با زحمت زیاد تونست در سنگی قار رو جابجا جا کنه. تنابی رو که دور کمرش بسته بود انداخت پایین و دختر محبوب خودش رو هم که خیلی نگرون بود بالا آورد. بعد هم پوست حیوونایی رو که از تن مردهها ها در آورده بود پر از تلاو و نقره و سنگ قیمتی کرد و همه رو به بیرون منتقل کرد. و بعد هم صندوق خودش رو با همه ی تلاو و جواهراتش از قار بیرون کشید وقتی جوزپه و دختر محبوبش با اون همه وسایل از قار بیرون اومدن راه افتدند و رفتند تا اینکه به جزیره دیگهی رسیدن پیش پادشاه جزیره رفتند و داستانشون رو برای اون تعریف کردند. پادشاه هم با آغوش باز ازشون استقبال کرد و بهشون جا و مکان داد پو و همسرش سالهای زیادی تو اون سرزمین زندگی کردند. صاحب پسر شدن. اما با وجودی که هیچی کم و کاست نداشتن و جوزپه هم نخس وزیر شده بود، همیشه آرزوی برگشتن به زادگاهش رو داشت. به بهانه که تفریح بکنه، برای خودش یه قایق ساخت. و برای اینکه پادشاه هم شک نکنه، به اتفاق زنش به دریا میرفت و شب برمیگشت به ساحل. یه شب آروم با زن و بچهش و صندوق و تمام داراییاش سوار قایق شد و تا اونجایی که میتونست پارو زد. از جزیره دور شد. تا اینکه تو روشنایی ماه به نظر رسید که اون دور دورا یه کشتی رو میبینه. شیپور دریایی رو به صدا در آورد و کمک خواست. یه کشتی بود که داشت به قسطن میرفت. خلاصه رویای دوره جوانی جوزپه به حقیقت تبدیل شده بود. اون با ثروت قار مرده ها یه مقازه جواهر فروشی باز کرده بود و ثروتمند و خوشحال به تورینو برگشت و پیش پدر پیرش که همیشه منتظرش بود، موند. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های را زفر کنیم جایی که پری